20 بیستم بعد از نهار راه افتادیم با اتوبوس هنوز یک ایستگاه نرفته بودیم که یادم افتاد سکه را جا گذاشتم اکه اصلا بلند شد بلند باید پدشیم چرا چی شد؟ بلند شد سکه را جا گذاشتم کدوم سکه رو بلند شد بابا همونی که هم مامانم گرفته بودم سکه چی هست؟ بلند نمیشد که فقط سوال می کرد. گفتم سکهای طلاس حسن انقد زر نزم بلند شو بلند شد اما خفه نشد گفت مگه پولت کامل نیست چرا پس چی میگی تا صبح هم باش یکی به دو میکردم به نتیجه نمی رسیدم. نمیرسیدم بود که از عقب اتوبوس داد زدم و با هر زور و تقلایی بود راننده را وسط خیابان نگه داشتم و پریدیم پایین هستم مثل سگ پاسوخته میدوید نه به آن بلند نشدنش نه به حالا که داشت اینطوری چهار نل میرفت اما من نه نه که فکر کنید داشتم با دل خوجسته برای خودم قدم می زدم ولی مثل حسن هم نمی دویدم انگار کنید که یورتمه نمی رفتم سکه را از خانه برداشتم اما کار به همینجا ختم نمی شد. سر گندش هنوز زیر لحاف بود حسن گفت ب بریم زرنگار بفروشیمش زرنگار الان باز نیست که زور جمعه ای حالا بریم یه کارش میکنیم. پسر پاک خول شده بود بس از حسن پس چی کار کنیم چمچاره مرگ؟ خب هر جا بریم همینه. الان جایی باز نیست سر زهری. آخ تو مسخره کردی یا چرا زودتر نگفتی سکه داری؟ کسی چیزی از من نپرسیده بود. بهش گفتم. حالا چه عیب داره؟ میریم اونجا لحظه آخر سکه رو میکنیم. اگه ایراد بنی اسرائیلی گرفتن تار سیبیل گرو می‌ذاریم میریم مغازه‌ای دور و خونش خونه‌شو میفروشیمش تو هم با این کارات این بی‌راحتی‌ها به این پول نزدیک نمیشه که. چرا نمیشه؟ مگه می‌خوام یقلبی بفروشیم؟ سه شما را آبش می‌کنیم. با اینکه پیشنهادم پیشنادم بدک نبود ولی سگرمهاش حتی زرهی هم باز نشد. توی راه هم هرچه برا شکلک درآوردم آوردم هیچی. اگر شما خندیدید او هم خندید. از بس که خیابان ها بود دو ساعتی طول کشید که برسیم. اصلا یک تک زنگ زد. اسکندر فاری کلش را از پنجره بیرون کرد. تا من بخوام بالا را به دو مرتبه خودش را پس کشید تا آن موقع هیچ دقت نکرده بودم که این بندگان خدا اصلا آیفون آیفون توی بساتشان نیست بیشتر از آن چیزی که برای پایین آمدن از آن 20سی تا پله لازم است لفتش داد که در را باز کند گفتم بفرما هستن آقا تحویل بگیر هنوز نه به داره نه به باره دارن اینجوری سگمه حلمون میکن حالا فردا رو داشته باش حرفی نذب ادامه دادم سر سه روبه که رو این پایین کاشته حداقل نمیاد درو باز کنه چی داری بگی باز هم حرفی نزد به قرآن اگه تا یه دقیقه دیگه رو وا نکنه میذارم میرم حتی برای اینکه حرفم روش اثر کند چند قدم هم به سمت سر کوچه برداشتم دوست داشتم بهم من نه نرو عباس نه خر نشو همه چی با دستای خود خراب نکن عباس عباس اما هیچ کدام از اینها رو نگفت حتی نفهمید که دارم جدی جدی تهدیدم رو عملی میکنم. تقریبا به وسط های کوچه رسیده بودم که بالاخره اسکندر در را باز کرد. ولی چون که خیلی از حسن دور شده بودم من را ندید. مجید گفت سلام چطوری؟ پس عباسکو؟ حسن با دست من را نشانش داد و گفت اونهاش داره میاد. بی معرفت حد دقیقا نکرد بگوید اونهاش داره میره. به خاطر همین حرف احمقانش مجبور شدم انر انر برگردم. اسکندر یک ارغغیر رکابی قرمز پوشیده بود با یک شلوارک آبی توسیه راه راه خدا به سر شاهد است که از پوشیدن این لباس ها منزور داشت من که میگویم میخواست بابت خسارتی که به خنزر پنزرهاش زده بودم تلافی در بیاورد بهم برخورد من عاشق این نیستم که هر کسی به هر قیمتی تحویلم بگیرد ولی به هیچ قیمتی هم حاضر نمی‌شوم که کسی تحویلم نگیرد نزدیکتر رفتم و منو حسن دست بی‌خودی داد و گفت بیاین تو درستش این بود که بگوید خیلی خوش اومدین بفرمایین داخل یا همچون چیزی بعد هم خودش یالوتر از ما پله رو کشید و رفت بالا تازه اگر حسن در را پشت سرش پیش نکرده بود مسئلهش بلا تکلیف می ماند. توی پاگرد برق توالت روشن بود و از توش بریده بریده صدای آب می‌آمد. این بدترین استقبالی بود که در تمام عمرم ازم شده بود اینجور رفتارها من را متقاعد می که هر جوری که هست زهرم را بریزم داخل هم غیر از اسکندر فقط حسین بود سلام علیک با او هم چیز دندانگیری از آب در نیامد فکر میکنم بابت گندکاری که کرده بودم گوشی را دستش داده بودم چون بد جوری سرسنگین بود اتاق هم که تعریفی نداشت هر بار از سری قبل کر و کسیفتر می شد حتی سعی نشده بود یک خوردم که شده تر و تمیز باشد دلم گرفت جدا دلم گرفت حالا دیگر دستم به کجا بند بود. داشتم دستی دستی خودم را زیر مجموعه یک مشت حالوی اقدهی می کردم. به کی به کی قسم حتی اگر یک درصد هم احتمال می دادم که زیر مشت و لگدله و لبردم نمی کنند. جا به جا زیر همه چیز می زدم و الفرار. اما دیگر خیلی دیر شده بود. جیک می زدم پوستم را قلفتی می کندند. شک ندارم که حتی حسن هم از خجالتم در می آمد. کسی برای نشستن هم نکرد. من هم صاف رفتم پشت میز کامپیوتر نشستم. درست جایی که سری پیش گند بالا آورده بودم. احتمال اینکه به شکل بی از آنجا بلندم کنن خیلی زیاد بود. برای همین هم بود که آنجا را برای تلف شدن انتخاب کردم. دو سه دقیقه بعد، سروش سر رسید. من رو که دید، گل از گلش گل شکفت. دستهاش تا زیر مرفق خیس بود. داشت تند تند دستش را از مچ به پایین به کپلش میمالید بر زودتر خشک شود. انگار از اینکه تمام این مدت را دست به آب بوده احساس شرمندگی می‌کرد. این دستشوی رفتن هم چیز جالبی است با اینکه این مسئله از قبل از بشریه در خلقت پیش شده و عالم و آدم هم مجبورند دستکم روزی سه چهار مرتبه از آنجا سر در بیاورند اما باز هم جزء مسائل شرم‌آور انسانیت به حساب می آید جونم هنوز بعد از 90 و بوغی سال به توالت میگوید گوید حاجت سروش زیاد طاقت نیاورد همانطور که پیش میکردم با همان دست‌های نیمه خیس جدا نمیشد بهش نیمه خوش گفت خیز برداشت و محکم به هم چسبید رازی رازی که نبودم ولی از درد لاالاجی بهش راه دادم اگر اسکندر حداقل کمی تحویلم گرفته بود محال بود بگذارم سروش ماچ بوسه های همیشگیاش اش را ازم بکند در آن لحظه جدا به کمی توجه نیاز داشتم بغلم کرد و چپ و راستم را تا پاله چسباند و بهم به خیلی تبریک عرض کرد کارش که تمام شد تازه گفت ببخشید عباس جان دست صورتم خیس بود این را باید قبل از اینکه اقدامی بکند میگفت گفتم راحت باش، ایشالا سریای بعد از این حرفم جوری خندید که نمیتوانم توضیح بدهم نه اینکه خیلی زیاد یا خیلی بلند خندیده باشد در اصل حالا جور خاصی بود دوباره سر جایم نشستم حالا جذابتر از همهاش رو براتان بگویم اسکندر مونیتور را عوض کرده بود مارکشم از مارکهایی بود که دللا پهنا پای آدم حساب میکنند با اینکه الان میشود بساله برقی در باداغان را عین آب خوردن تعمیر کرد ولی مثل اینکه اسکندر حواس کرده بود یک نوعش را بخرد. بعضی ها اینجوری دیگر. طبعشان جنس تعمیری بر نمی داره. یک که قد بلند کنار میز کامپیوتر بود که می توانستم باهاش تازه کنم. کردم. چه میدانم؟ شاید اگر صبر میکردم کردم خودشان بهم تعارف میکردند. اسکندر آمد کنار دست حسن روی تخت گرفت نشست. می چرا؟ چون جایش رو من گرفته بودم. اما حرفی نزد. سروش گفت. خب خوش اومدی عباس جان. صفا آوردی. آدم باید وقت چاخ سلامتی ملاحظه سن و سال خودش رو بکند. اینجور جور آرفات مال آنهاییست که بعدش می خواهند از این طرف ها راه گم کردین یا پارسال دوست امسال آشنا یا همچون چیزهایی. در عوض من هم بهش گفتم از این که دوباره می بینم از چقدر خوش وقتم و این که در پوست خودم نمی اینقدر هم طبیعی گفتم که باور کرد حسین گفت خب بچه موافق باشین شروع کنیم چون چهار ساعت که بیشتر وقت نداریم مسئله چهار ساعت را تازه علام کرده بودم گفتم مگه چهار ساعت دیگه چطور میخواد بشه؟ سروش دنباله حرف را گرفت الان یک ماه که همه ی کمپانی تو تخفیفه امروز تایم تخفیفات اکسپایر میشه پسر جلف یک کلمه از حرفاش فهمید. گفتم یعنی خوبه یا بده این را از سروش پرسیدم ولی دمش گرم حسن خودش برام توضیح داد که قضیه مربوط به همان ارزان شدن تلا هاست و به هم اطمینان داد که از این بابت خطری تهدیدم کند حسین بلند شد و رو به من گفت عباس جان چل لحظه بلند میشی باحترم‌تر از آن چیزی شد که تصورش را می کردم بلند شدم و روی صندلی چرخانه بغلی نشستم خودش هم جای من نشست انتظار داشتم اسکندر آنجا بنشیند ولی می بینید که حسین نشست. حسن هم آمد مثل میر قذب پشت سر من دست به سینه ایستاد. گمانم میخواست چیز یاد بگیرد چون حسین تند تند صفحه ها را عوض میکرد و وسطش هم برای حسن توضیح میداد که چرا دارد این کارها را می کند. باز هم به حسن من که از بیخ عرب بودم. بعضی صفحه ها را با عدد و رقم و این چیزها چیز پر میکرد بعضی هاشان را هم نه همینجور خوش و خالی رد میکرد تا به صفحه باحالی رسید. توش باید تمام اسم و آدرس و شماره تلفنم را به خارجی می نوشتیم خندهتان می گیرد اگر بهتان بگویم که حق باسا جای اسم پدر چی هستم خواستند اسم مادر از بس که این خارجی یا اینقدر کسافت کاری می کنند که پدرهاشان در پیچ و خم روزگار گم میشوند بعد میآید سراغ مادر آدم را می گیرند. وقتی مطمئن شدم همه جمع قبلا اسم مادرهایشان را لو اند من هم مقاومتی نکردم تازه یک چیز جالبتر تو این هیرو حسن من گفت آدرس ایمیل چیه؟ برای چی میخوای باید این تو وارد کنم بگو همین الان باید بگم آره آره حالا آدرس ایمیل چی هست؟ به جای اینکه جواب من را بدهد همانجور نشسته سرش را برگرداند و حسن را چپ چپ نگاه کرد حسن گفت آخ انقدر هل شد یادم رفت شرمنده چون نمیدانستم آدرس ایمیل چیست، درست درسته حدس بزنم که به مشکل کوچکی برخوردیم یا بزرگ فقط معلوم شد هرچه که هست درست کردنش باید گردن حسن بوده باشد سروش به با حسین گفت آدرس ایمیل خود حسن و آلترناتیوش بسن بعدش میرن از تو هم چنج میکنن حل شد من که سر در نیاوردم ولی حل شد حسین گفت ایمیل چی حسن حسن گفت حسن هستم 2005 ادسانyahoo.com به جان مادرم آدرسش همین همین بود به همین قزمیتی. بعد از آن دیگر کاری به کار من نداشتند تا دست آخر به یک صفحه شلوک بلوغ برخوردیم پر از اکس های جور و جور راستاد و را که خدا عالم است ولی آنطور که میگفتند عکس ها مربوط به محصولاتی بود که برای فروش گذاشته بودند از همه قشنگترش ترش عکس یک ساختمانی بود که قبلا چندباری توی تلویزیون دیده بودم. شاید شما هم دیده باشید همان که دو ازار و خورده ای ستون دارد به گمانم توی یونان بود ولی خب زیاد مطمئن نبودم یعنی اگر کسی جفت پایش را توی یک کفش میکرد که توی ایتالیاست یا فرانسه یا هر جهنم در ر دیگر باهاش ده همه دهن هم نمیکردم جدا که خیلی مامان بود گفتم من همینو میخوام انگار که حرف مسخره زده باشم همه خندیدند حسن که سرخ و سفید شد سروش درست کنار دست من ایستاده بود و داشت لب پایینش را گاز میگرفت که مثلا بریشم نخندم. دمش گرم حسین سنگین و رنگی نشسته بود گفتم چیه فروشی نیست؟ سروش درآمد که چرا ولی پولت به اون نمیرسه اون هیسته هزار توانیه سه امتیازیه میتوانست بگوید خیلی گرونه ولی پولت به اون نمیرسه آدم را تحغییر میکند من جدا با این چیزها احساس اغارت میکنم گفتم پس پولم به کدوم میرسه؟ را با دل شکسته پرسیدم. حسین این کامپیوتر را کمی تکان, تکان داد تا بتوانم پایین را بهتر ببینم. آن ته ته صفحه عکس دوتا تا سکه نقره بود هر کدام به قعدده دوتا بکی روی یکیش عکس یک پرنده بود و یکی دیگرش هم تصویر پیرمردی که خچین روی کلش بود و اصلا هم معلوم نبود داشت چه غلطی میکرد چون توی یک دستش یک اصاب چه گندگی را روی هوا بلند کرده بود؟ و با آن یکی داشت برای نمیدانم کی دست می داد. منظورم این است که این چه جست مسخره ای است زیر هر دو تا عکس هم یک نوار نارنجی فسفوری پر رنگ کشیده بودند که یک و خدای ناکرده با آنهای دیگر که تخفیف ندارن قاطی نشود حسین پرسید کدامشو میخوای گفتم کدام بهتره انتخاب با خودته هر کدوم دوست داری من از ته دل آن سکه ای را که گفتم عکس ساختمان یونانی داشت را دوست داشتم ولی دیدید که چه شد چطور اسم تلا رو به قیمت خون پدرشان پای آدم حساب می‌کنن؟ حسن گفت: امتیازاتش هم یکی فرقی نمی‌کنه. همینجور روی عکسو قفل کرده بودم. اینقدر لفت اللها آبش دادم که صدای اسکندر از آن پشت درآمد. کدومو می‌خوای بالاخره؟ پرندهه رو یا اون پاپ مسیحیی رو؟ جوری گفت که انگار پاپ یهودی هم داریم. تو یک دست تصمیمم رو گرفتم و دستم رو, رو روی سکه گذاشتم که عکس پرنده داشت. کاملا اولاق جای انگشتم روی مانیتور ماند می توانستم از دورتر نشان بدم یا یعنی اینکه مثل بچه آدم با زبان بگویم کدامشان را میخواهم حسین گفت مطمئنی؟ بعد از خرید دیگه نمیشه عوض کنی آه؟ نه همین خوبه مطمئنی؟ آره؟ بخرمش از خودش بود الکی دوستش کک تو تنبارم بیندازد من با پاپ مشکلی نداشتم فقط مسئله این بود که اگر بنا باشد کار به مسائل مذهبی بکشد من امامزاده معصوم خودمان را به این بابا که تازه از رگ و ریشه خودمان هم نیست ترجیح می دهم. هر جوری بود بهشان اطمینان دادم که حرف مرد یکی است و اینکه من برای خودم مردی شدهام. این را هم بگویم که این خریدهای های اینترنتی آنقدر ها هم که میگویند چیزهایی راحتی نیستند یعنی آنجور ها هم که توی تلویزیون تبلیغ میکنن آسان نیست گاهی دمار از روزگار آدم در میآورند تمام شدنی که نبود دوباره یکجا بهم گفتن که پسوردم را لازم دارند اول بهشون گفتم که اگر قضیه چیزی مثل آدرس ایمیل است من ندارم و دوباره خود حسن باید جورش رو بکشد ولی آنجور که به من گفتن می توانستم هر اسمی رو که عشقم بکشد انتخاب کنم گفتم چی باید بزنم حسن گفت این پسوردته هر چی که بخوای میتونی بزنی من حداقل باید 6 حرف باشه حسین هم اضافه کرد یه چیزی بزن که از یادت نره یه کلمه که همیشه تو یادت بمونه اگر این جمله آخری را نمیگفت معلوم نبود چه کلمه ای را میخواستم انتخاب کنم ولی با حرفی که حسین زد بی اختیار انگشت شستم را روی دکمه های لام الف لام ه فشار دادم زیر چشمی همه شان را ساکی داد هیچ کدامشان از روی دستم نگاه نمیکردند ظاهرا هیچ منتی هم از این بابت روی سرم نداشتند برای آنکه شش حرفم کامل شود دکمه های عین ب الف سین را هم یکی یک بار زدم اگر تو حالا با کامپیوتر جا سر و کار نداشته اید باید بهتان بگویم که پسورد حالت به خصوصی دارد که وقتی روی صفحه کلید فشار بدهید روی مونیتور ستاره می شود یعنی شما هرچهی این پایین فشار بدهید آن بالا ستاره تحویل می دهد این رفتار کامپیوتر در مواردی باعث دلگرمی انسانیت می شود دوباره به پشتی صندلی تکیه دادم حسین پرسید تمومه؟ آره منتها ه حرف شد خب یه بار دیگه بزن چرا مگه اونو قبول نکرد؟ چلخوز ها دوباره خندیدند شده بودم اسباب مسخره جمع. سروش گفت چرا؟ ولی باید دوبار بزنی خنده نداشت یک دیگر هم زدم لام الف لام ه این به الف سین. یا حضرت آدم دختره بدون اینکه متوجه باشم چقدر روی مخم اثر کرده بود این اولین باری بود که متوجه نکته‌ی به این مهمی شده بودم. حسین گفت: آها، حالا تموم شد. این را که گفت، توقع داشتم سروش توی بغلم باشد، ولی انگار دو سه تا ریزکاری دیگر باقی مانده بود. کار چند دقیقه کش آمد. از قیافه‌ی حسین و اسکندر معلوم بود یا یک چیزی شده یا یک چیزی نمی‌شود. من از مسائل کامپیوتر قد خر نمی‌فهمم، اما وقتی کاری پیش نمی‌رود، از ده فرسخی هم معلوم می‌شود. سروش حسین را از روی صندلی بلند کرد که خودش یک امتحانی بکند ولی مثل اینکه کار با ور رفتن راست نمیآمد اسکندر گفت را نمیده سروش حالا سروش هم از خدا خواسته نشسته به نست تعریف حرف زدن. آره سدی نوو سیستم مینتیننس داره آپگرید میشه یه شادن دارن از دیتابیس کمپانی بکاب میگیرن حالا معلوم میشه من که ککم هم, هم نمیگسید مثل سرو سناور برای خودم تخت و تبارک داده بودم. ولی حسن دوباره نگران شد آن روزها توی هر فرصتی که گیرش میآمد نگران میشد پرسید مشکلی پیش حسین نه مشکلی نیست هر وقت اینجوری میشه خودش خود به خود درست میشه این رو از من که برادر کوچکترتان داشته باشی در این دنیا هیچ چیزی نیست که خودش خود به خود درست شود مطلقا هیچ چیز من مرد شما زنده. حسن از حرف واسه کمی خیالش راحت شد. ولی چون از اولش هم برای من فرقی نمی کرد، فرقی برایم نکرد. فقط بلند به سروش گفتم. سروش ممکنه سیستم فول مارکتینگ باشه یا نه؟ اقلش پیچید. انگاش به دهم مانده بود که این چی چی بود که تحویلش دادم. چون خیلی جدی بهش گفته بودم. جواب داد؟ یعنی چی؟ منظورم اینه که سیستم الان توی سیدان یا آخ آخ آخ نه مثل که اشتباه کردم با درایور عوضی گرفتم هیچی شما مشغول باشین بعد از روی صندلی بلند شدم و روی تخت بغل به بغل حسن نشستم تا وقتی مشکل سایت حل شود اما کار اصلا پیش نمیرفت رفت اینقدر طول کشید که از سر ناچاری انگشت وسطی هم رو روی شستم گرد کردم و از پشت یک زنبولی پس گوشه حسن زدم ضربه خوبی از کار در نیامد بلافاصله یکی دیگر زدم از بیکاری که بهتر بود چون توی گوشانوری أشده بودم اول اسکندر را نگاه کرد ولی پس پسگردنی که پشت بندش به خیالش را تخت کرد که کار از سمت مناب می‌خورد می‌خواست برگردد فش ناموس بکشد که زنگ در خانه را زدند چون سروش لای پنجره نشسته بود قبل از هر کسی کلش را از پنجره بیرون کرد تقریبا با همان سرعت هم دوباره آن را پس کشید با آن قیافه‌ای که به خودش گرفته بود باید میگفت لعنتی یا فروختنمون یا یعنی اینکه مامورا واس فرار کنیم. بدبختی من همسرم درد میکند برای اینکه از دست آجانها فرار کنم از بچگی آرزو داشتم که یک بار به هر قیمتی که شده پشتبان به پشتبام از دست مامورا در برم. فقط بدیی که داره دست آخر آدم گیر میافتاد و باید از سیر تا پیاز به همه چیز اعتراف کند برای همین قصد دارم یک بار که خلاف سنگینی نکرده باشم از راه پشتبام از چنگ قانون فرار کنم همه برزده بودیم به سروش سگرمش را مثل انتر تو هم کشید و گفت لالهس بعد هم دهنش رو مچاره کرد. درست به همان اندازه که قرن تو دل من آب می شود بقیه که خورده بودند. اسکندر پرسید. لاله تنهاس تنهاست؟ آره تنهاست؟ می خواد بید بالا؟ چه بدونم؟ اسکندر ماتش برده بود. باز به سروش گفت. خیلی خب تو برو پایین در باز کن. بعد خودش بلند شده مثل آدم هایی که خواب مانده باشند. تند تند باز هاش عوض کرد این کارش دسته کم نشان میداد که خودش وضعیت بد لباسهاش را قبول دارد و همین مسئله نظریهی من را در مورد اینکه ما را آدم حساب نکرده بود تایید می کرد سروش تقریبا یک دقیقه بعد با لاله توی اتاق بود که برای آمدن آن همه پله چپندر چلاق زمان خوبی است. لاله به حسن سلام کرد اونم یکی هم به حسین اسکندر هم که هیچ ولی به من که رسید گفت به به عباس آقا چشم ما روشن؟ چوب کاری نمیکرد راست می گفت. بفهمی نفهمی چشمچپش چشم چپش یک پرده روشنتر شده بود اسکندر اصلا دست از تعج کردن بر نمی داشت. از لاله پرسید: « این ورا؟ منظورش این بود که چرا این ورا؟ این را دیگر همه فهمیده بودند. اگر لاله ساعت سونی به نصف شب با لباس بالماسکی هم در خانه ما آمده بود محال بود همچون سای ازش بکنم اما اگر جدا قرار نبوده که آن طرفها آفتابی شود باید توضیح قان کننده میداد. گفت، خرید دارید؟ معلوم نبود از کی می پرسد. برای همین من خودم جواب دادم. آره خرید منه؟ سال اسکندر توی گلوش هن شده بود. پرسید، از این لاله. لاله گفت، از تو شنیدم خرید دارید اومدم ببینم چه خبره. من کشت این رفتار دخترا هستم. اگر این جواب را یک پسر داده بود، حتمانی دوباره سال پیچش می که بالاخره چیزی ازش بیرون بکشند. اما وقتی زن جماعت اینطور جواب سر بالا می دهد، دیگر کسی پابخش نمی شود. این به خاطر احترام این جو مسخره بازیها نیست. نوعی بیخیالی نسبت به خانم هاست که مستقیماً به ضعف آقایان مربوط می شود. زن موجودی نیست که بشود باش مردانه صحبت کرد. و اگر زنی خودش متوجه این موضوع شده باشد، دیگر هیچ کاری اش لاله صاف رفت جای حسین نشست چون حسین به احترام لاله بلند شده بود و صندلیش بی صاحب مانده بود و اسکندر هم روی آن یکی صندلی درست کنار دست لاله نشست غلط نکنم میخواست مسئله از این ورا را به سر برساند می را پایین انداخته آرام آرام مشغول حرف زدن شدند منظورم از آرام آرام با صدای پایین است نه سرعت پایین لاله یک پایش را رو روی آن یکی انداخته بود ماچه پایش را با چه سرعتتی تکانتکان این کار بیشتر از اینکه یک مهارت باشد یک تیکه عصبی است راجب شنیدم برای همین خیلی آرام که کسی متوجه نشود از حسن پرسیدم که میداند چرا لاله از شوهرش جدا شده یا نه جوابش منفی بود و چون جواب منفیش خیلی رکیک بود من هم دیگر چیز اضافه نپرسیدم حسین و سروش تو این فاصله گوشه اتاق روی فرش نشسته بودند و داشتن به حساب کتاب میرسیدند از یک ماشین حساب و چند تا فیش بانکی که بساد کردند میشد این رو فهمید. اسکندر هر ازگاهی تققی روی موس میزد که ببیند خبری شده یا نه؟ ولی قشنگ معلوم بود که دو ازاراعصاب ندارد. دست به پاکت سیگارش برد و یکی از آن فیلیپ موریس هاش روشن کرد از دندان های زرد گن گرفتش پیدا بود که سیگاری قابلی است پاکه را که زد دستهایش را پس کلش گذاشت و به پشتی صندلی تکیه زد. هر چه منتظر شدم که دودش را حلقه بیرون بدهد نداد اگر کسی نمیخواهد دود سیگارش را ای بیرون بدهد حق ندارد همچون ژست فریبکارانه ای روی صندلی بگیرد گفتم اگر راه نمیده میخوایم بزاریش واسه فردا سروش هم حرفم را تایید کرد آره مجید این حالا حالا کارش کار داره میتونی فردا انجامش بدیم حسن گفت تخفیف ها رو چیکار میکنین نهایتش تا آخر امشب سروش گفت او آره اینم هست اصلا خودت نمیتونی خرید عباس تو خونه انجام بدی هیشگی هم نه حسن حسن گفت نه تو رو خدا منو معاف کنی من واسه این کارا ساخته نشدم انگار کاری بود که برایش ساخته شده باشد لاله درآمد که ولش کنین الان درست میشه اون سری سر خرید مریمم هم همینطوری شده بود خودش درست شد حسن پرسید چقدر معطلی داشت نمیدونم دقیق ولی گمونم دو سه ساعتی شد حسن لب گفت او دو سه ساعت؟ بعد ادامه داد مجید جان ما تو اون موقع دیرمون میشه خونه منتظرم فکر کنم بقیه دست خودتو میبوسه اسکندر سیگارش رو توی جا سیگاری له کرد بعد در حالی که داشت دود پاک آخر را بیرون میداد حلقه معمولی سرش رو به طرف شانه چپش جا به جا کرد و گفت باشه به غیر از اینکه که ممکن بود دیر وقت بشود و به اتوبوس های شرکت واحد نرسیم اجری برای رفتن نبود گویی که غیر از لاله هم انگیزه برای ماندن نداشتم فلفور از روی تخت جستم و گفتم خب دیگه ما یواش یواش میریم که اگه سروش توی بغلم کپنک نمیشد شاید یک دو جمله دیگر هم گفته بودم سروش که کار را کلید زد انگار که عیدی چیزی اعلام کرده باشند یک مرتبه فضای اتاق پر شد از تبریک و شاد باش. حالا فیلمشان بودها ولی خیلی تبی اتاق را رو روی سرشان گرفته بود معلوم نبود حسین و اسکندران وسط چرا هم دیگر را چسبیده بودند توی همین پلوغی لاله از پشت خودش را نزدیک گوشم کرد و خیلی نرم گفت از امروز هر کاری داشته باشی میتونی روی من حساب کنی عزیزم شماری منو حسن داره خدایا این دختر ختم حرف‌های کننده بود داشتم کم کم دست و پام را گم می‌کردم قبل از اینکه تمرکزم را به طور کامل از دست بدهم گفتم به هر حال هر جور مایلی. میان این همه حرف من باید همچون جواب مسخری به این دختر میدادم ترمال شد رفعی کارش اما دیگر دستگاریش نکردم که گندش بیشتر از آن در نیاید من از در رفتم بیرون اما حسن کمی ماند که پولها را تحویل سروش یا کی بدهد داغ شده بودم سیب زمینی که نیستم داغ شده بودم نفهمیدم چطور به خانه رسیدیم.